بخش سوم. دیروز صبح مرتضار از میان ما بردند. همان طوری که گوسفندی را از میان گله‌ای به کشتارگاه می‌برند. شاید من تنها کسی بودم که زغ کردم. برای آنکه پهلوی خود می‌گفتم راحت شد و امشب در ساعت دوازده در رقص مردگان شرکت می‌کند. دست رجبوف را می‌گیرد با هم جشن آزادی می‌گیرند. بدون بغض و کینه، بدون حسد و تمع، اما آزاده آزاد. نه اینطور نیست. امروز صبح آمدند و اساسه او را جمع کردند. ما یقین داشتیم که او را اعدام کردند. موقعی که میخواستم، اساسه را آوری کنم، چند صفحه کاغذ یافتم. من آن را دزدکی خواندم که اگر لازم است به دم جثه اساسهش ببرند و به خانهاش برسانند. و یا اگر قاچاقی به دست او افتاده است به هر وسیله که لازم است به مارگریتا و یا به خواهرش برسانم اما مراسله به خط مرتضا نبود معلوم بود که از خارج رسیده است اینک این مراسله محشوق من تنها دوست من به نظر تو من همون وقت دختری سرسری بودم میخندیدم میگفتم کمتر مرا غمگین غمگیم ای. اینطور نیست یک مرتبه در ضمن صحبت به من گفتی که از من فداکاری بر نمی آید. گاهی صورت رنگ پریده من تو را متوجه راسهای پنهانی دل من می کرد. اما به زودی خنده های بلند من این افکار تو را میتاراند. اینطور نیست شاید هم بعضی اوقات با خودت می گفتی که من با تو بازی می کنم. و را و احساساتت را به مسخره گرفتم اینطور نیست تو در اشتباه بودی میدانی پیبردن به دردهای دیگران كار آسانی نیست چه برسد به مصیبتها و مشقاتی که من تحمل کردم و هنوز هم با جرأت آماده برای تحمل هستم زندگی من سراپا فداکاری بود معشوق من مادرم در آخرین نامش نوشته بود که از پدرم نگاهداری کنم. مادرم و پدرم همدیگر را بسیار دوست داشتند هنوز هم دوست دارند. انقلاب زمان آنها را مجبور کرد که از هم جدا شوند. مکرر میدیدم که پدرم ساعتها می توانست جلو عکس مادرم بنشیند و فکر کند. مادرم همیشه از وقتی که من بزرگ شدم به من سفارش می کند که مواظب پدرم باشم و سعی کنم که از مصیبتهای او جلوگیری کنم پدرم مرا خیلی دوست داشت و تمام مصایب زندگی را محص خاطر من تحمل می‌کرد. پس از هیچ کس پدرم بیش از رجبوف بیزار نبود اما چون مرا دوست می داشت تمام مصایب زندگی به علاوه معاشرت رجبوف را در خانه ما با صورت خوشی قبول می‌کرد. رجبوف برای نفع خودش پدرم را در معاملات خطرناکی شریک کرده بود و بدین طریق زندگی ما را خراب کرد. اوایل رجبوف برای نفع خودش به پدرم در کارهایش کمک کرد. رجبوف را پدرم از روسیه می شناخت و او آنجا دلالی می کرده است. اما این اواخر چون چشم طمع به من دوخته بود، دیگر زندگی برای ما بدون کمک او غیر ممکن بود. در ضمن رجبوف استفاده خودش را می کرد. چه روزهای سختی باید به پدر بیچاره من گذشته باشد و از طرفی رجبوف را محض خاطر اینکه در زندگانی به من بد نگذرد تحمل می کرد. از طرفی نمی توانست مرا به او واگذار کند. در این گیر ودار تو پیدا شدی. محشوق من. کاش نمی آمدی. در زندگی من نور و آمیدی پیدا شد. همین دوستی در پنهان دوستی که هیچ کس حتی مارفینکا از آن اطلاع نداشت این دوستی که از هر آتش گداخته ای سوزان درست این دوستی به من امیدواری می داد. من حاضر بودم که مثل تاتیانا تمام زندگی خودم را پیش تو بیندازم اما یقین داشتم که تو آن را رد نخواهی کرد اینطور نیست بلاخره راه حلی برای آسایش خاطر پدرم پیدا کردم. روزی به او گفتم که من با میل حاضرم رجبوف را به شوهری قبول کنم. اما پدرم با وجود اصرار رجبوف همیشه این کار را عقب میانداخت، زیرا مطمئن نبود. آن روز جمعه ما به رجبوف گفتیم که در خانه نخواهیم بود و پیش ای که از دوستان پدرم دعوت داریم. همون موقعی که تو از خانه ما خارج شدی تو را دیده بود همان شب با وجودی که پدرم نخوش بود راجب من با او صحبت کرد و اصرار داشت که در عرض چند هفته اقلن نامزدی ما علنا به همه گفته و جشنی گرفته شود همان شب به پدرم حالت سکت دست داد و من یقین داشتم که دیگر از این مرض جان به نخواهد برد و یا مدتی زمین گیر خواهد بود من در فکر بودم که از این زجر او جلوگیری کنم و خودم و پدرم را بکشم. تمام وسایل آن را برای همان روز شنبه فراهم کرده بودم. میخواستم صفحه دنس مکبره را بگذاریم و هر دو بمیریم. من مشغول تهیه مقدمات بودم که رجب اف سر رسید. در یک چنین موقعی دیگر تحمل قیافه او برای من غیر ممکن بود. از او درخواست کردم و بعد به او دستور دادم از خانه ما خارج شود. اشاره‌های های زننده ای راجب روابطی که ما بین من و تو برقرارست رست کرد. به من توهین نمود. بعد ستیزگی کرد. حتی خیال داشت به من بی کند. مست بود. من او را با چوب کلفت پدرم تهدید و بعد از اتاق بیرون کردم. موقعی که به ایوان رسید از پلده ها دادم پایین. پایش لیز خورد و سرش به گوشه پله تصادم کرد. محشوق من. بقیه را میدانی. بد کردم. حقش این بود که تو را مطلع کنم. این طور نیست. پدرم مرد. اما دیگر می بینم که دوره فداکاری من هنوز سپری نشده است. هنوز جرات نکردم به مادرم. خبر مرگ پدرم را بنویسم. این کار با تو، تمام آنچه راجب من میدانی به مادرم بنویس به او بنویس که دختر شایسته او هستم و من هم بلدم فداکاری کنم مقصود من از فرستادن این مراسله این است که من نمیتوانم تحمل کنم تو در زندان باشی و یا بمیری و من در زندگی بدون مقصود و هدفی باشم شاید اگر غزات اوضاع و احوال مرا بدانند مرا به مرگ محکوم نکنند من پس از ده سال و یا یاز ده سال دیگر از زندان بیرون خواهم آمد آن وقت زن خوشبختی خواهم بود تو را دوست خواهم داشت و با دوستی تو زندگی خواهم کرد اگر مردم که باز خوشبخت مردم تصمیم من این است همین امروز خود را به شهربانی معرفی می کنم. مرگریتا چند روز بعد، همون کسی که اسم همه را بلند صدا می کند و مرتضا فرزند جواد را صدا زد و مرخص کرد، اسم من را صدا زد و مقداری خوراکی و کلا هم را برای من آورد. در دفتری که من رسید آن را امضا کردم نوشته شده بود، آورنده مرتزا چند روز بعد برای زندانیان باز پول آوردند موقعی که یکی از هم اتاقهای من قبض‌های پول را زیر و رو میکرد که قبض خودش را پیدا کند به قبضی برخورد که مال زندان زنان بود و روی آن نوشته شده بود اسم گیرنده وج مارگریتا Bye.